تاری قطبیم را گم کردم یاد نیست. از لابلای این گیوارها که بر هر کدام هزار هزار سایه حک شده است راهی نمیادم. به بمبث می رسم به خون گرفتگی خوشید. به بهد ماه که به زمین تنگ شده مینگرد. به این ازدهام بی سر انجام. در آخرین روز انتظار از آسمان ممنوع برخواهی آمد تا خورشید مغربیام تکسیر شود و من با تمام یاخته هایم به سلام خواهم ایستاد سلام بر تو بانوی آباینه و تو تنها تو ای دیر آمده پاسخ سلام مایی، دست را به به پاسخ دست ما که به احترام تو به احتزاز در آمدند و در سکوت فاجع بار جهان تو و جستجو می کنند. نمایم دلم را و افراسیاب، درخشانتر از ورسپه را افتاب، هرانجا که روشن بود راستی، فروغ دروغ آورد کاستی. خداوند بخشنده مهربان سلام ارز میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و تسلیت عرض میکنم شهادت خانم فاطمه زهرا سلام علیه علیها خدمت همه شما میهمان عزیز ما آقای دکتر فریدون جنیدی هستند و برنامه ما پنجره‌هایی رو به محتاب هست است باری شاهنامه فردوسی صحبت میکنیم آقای دکتر سلام شب شما بخیر درود روزگارشون رو خوش آقای دکتر امشب قرار هستش که فکرم کنم در مورد تحموله صحبت کنیم با توجه به صحبتی که بیرون داشتیم شما فهمیدید. اما یک جمعندی اگر از برنامه گذاشته فهموندید ممنون میشم سفاس در برنامه پیشین ما دنباله رمزگوشایی داستانوشانومه رو گرفتیم ببخشید در این رمزگوشایی کیو کیومرس روشن شد که افارت از دو بخش گای مرتر یعنی جان میرا یعنی پیدایی جان در جهان که همراه با مرک هست بس. و این است که در حقیقت از جمادات به سوی زندگی گیاهی و جانوری اومدیم و در این واجه، این تنها واجه است در جهان که این دوران عظیم و باشکور رو میرسونه که هنوز هم ادامه داره بس. یعنی هر جانداری ناچار به روزگار میسید که با مرگ ما باشه اون وقت در این روزگار در روزگار کیومرس ما با یک سرمایه دو سرمایه البته با یک سرمایه خیلی بزرگ روبرو شدیم که در شاهنامه به نام سیا مک می شود که در عوستا سیا یعنی قار سیاه یعنی سرمایی که بورم نخستی که و پنج سال پیش آغاز شد و نجات بشر رو ناچار کرد که برای نگهبانی تن خودش به قارهای سیاه پناه ببریم آمدتون دا... میخواین آبی میل بفرمایی آبی میل بفرمایی باحت بشید نه درست خود بشید ام... در این زمان بود که سوهربوی بشر هم بخواست شد بله. یعنی بر نامه های دیگر ایرانی اومده که سیامک را یک برادر همزاد بود به نام فرواک و چون فراباک رو شکافتیم یعنی پیش به سوی سخنگویی بنابراین نشون میده که در هنگام نخستین سرمایه جا بزرگ جهانی پس از ست هزار سال سخنگویی هم در اون قار کم کم آغاز شده و پیشوند فر حرکت به طرف پیش رو نشون میده و به خوبی و شایستگی نشون میده که گفتن از آغاز بسیار ساده بوده کم کم مفاهیم و کم کم اندیشه ها و کم کم حروف با واسطه ها و افعال پیش اومده و سخن رو به این مرحله رسونده که امروز ما داریم ده. و بعد به این که اگر سخن نمی بود بشر هم مانند دیگر جانوران دنیای اندیشش وصلی نمی شد ما با گفتار می تونیم دنیای اندیشه خودمون رو گسترده بکنیم ده. این تبادل و گفتار ناچار اندیشه رو برمی‌انگیزه و دنیای اندیشه پیشی میگیره این بخش پرواک در شاهنامه یعنی نام فرابط در شاهنامه هم و در دیگر داستان ها و طوری بد بعد از اسلام و زمنا در کتاب بوندهش و کتاب های پهلوی قبل از اسلام اومده اما در شاهنامه یک گفتار خیلی شگفت است که همین همین رو نشون میده سرش راست بر شد تو سر بلند به گفتار خوب و خرد قربند یعنی انسان وقتی که خمیده بود و به شکل دیگر جانوران و اشکالی که دیدیم همه ما که چطور بشر رشد میکنه ببرد جایی میرسه که سرش راست میشه و زیبا میشه در شانومه اومده بود زیبا به سر بود یکی مرور رایی که خوب روی و در اینجا اومد که سرش راست بود شو سر ببرند خیلی شگفته کار نیاکان ما و اون نیاکان ارجمند که شانومه را نوشتند و در غالب گفتارهای کوتاه مفاهیم خیلی بلند رو شر دادن. به گفتار و خوب و خرد کار بند. همون مفهومی که بنده از کردن. یعنی اینکه گفتار پیش اومد بعد خرد پیش اومد. البته در فرهنگ ایرانی دو گونه خرد داریم. یکی آسم خرد یعنی خرد خدا داد. که امروز روانشناسه میگن خرد قریزیه. نگاه کنیم به موارد مختلفش می‌بینیم که این نمیشه خرد غریزی نام ببریم مثلا فرض کنیم که جوجه‌ای که از تخم میاد بیرون بیدرنگ جیک جیک میکنه و نک میزنه به زمین یعنی میدونه کجا روش رو زمینه بس. اما وقتی که بر آهو به دنیا بیاد بیدرنگ سرش میبره بالا میدونه خوراکش در پستان مادرش هست اگر این غریزی بود باید در هر دو یک نواخ بود یا در تمام جانوران یک نواخ بود این رو باید بگیم خدا داد خردی که به فرمان خدا همراه با جان در تن انسان دمیده میشه خرد گونه دیگر در فرهنگ ایران بود و گوشون سرود خرد یعنی خردی که در گوش سروده میشه و اون ویژه انسان هست ما هر چقدر که خردی رو که در گوش سروده میشه بیشتر به دست بیاریم خرد اصل خرد یعنی خرد خدایمون رو کم کم ازش دور میشیم در حالی که در جانوران این نیست. جانوران همواره با آسان خرد زندگی میکنن. و به هر صورت این گوشان سرود خرد به دنبال گفتار پیش میاد. همون چیزی که در فرواک هست همون چیزی که در گفتار آغاز شاه اومده که به گفتار خوب و خرد پایبند. این مفاهیم خیلی خیلی بلنده. من آرزو دارم که فرزندان ایران جوانان میهند به این مفاهیم بلند گوش و در و جهان د سپاران و بدونم که نیاکانم در کوچیکترین گفتارها در کوچیکترین قالب‌ها بزرگترین و گسترده گسترده مفاهیم دانشی جهان رو به ما عرضه کردن پس از اینکه گفتار پیش میاد و دوران سیاو مکوان میرسه این از قارمیان بیرون میبینیم یه سرمایه دیگه است. یه سرمایه دیگه که ورم دوم باشه. و در اون ورم دوم بسیاری از افراد اجاد بشر عدوه میرن و تباه میشن گروه از اینا به سوی شمال میرن وقتی که از قابر اومده بودن بیرون اونا بیدرنگ تباه شدن گروه که به طرف جنوب میان جان خودشون رو حفظ میکنن در اینجا از نخستین خوراک ها یاد شده که در کتاب دستان ایران من از اون یاد میکنم و پیش میره بشر به سوی ساختن خانه و من فکر کنم که اینو در بخش پسی گفتار در صحبت اشتابه کنیم انشالله یعنی مدنیت پیش میاد بله کم کم شما سنواندی برنامی پنجره های روی مهتاب هستید و امیمان عزیز ما کارشناسی این برنامه روزهای یک کم به آقای دکتر فریدون جنیدی هستند و درباره باره شاهنامه فریدوسی صحبت میکنند شما تلفن های ما 222-400-825 222-400-825 222-500-8 800-800 دیویست و بیست و هشت و پیامک ما سی و و است و من با شما شنوندگان عزیز تجربه میکنیم خوب شنیدن و درست پرسیدن را سرما بشر کم کم اندیشید که باید به یک راه حلی پیدا بکنه در نظر بگید که نجاتا بشر ما نده جا همه جانوران برهنه بود و این سرما اون برف و اون تگرگ و اون باران و اون بادخواه و اون طبیعت سختی که بشر باش رو برو بود کم کم خواهی نخواهی به این دوران رسید به جایی رسید که باید که تفریبی برای مبارزه با این سرما بده و در اینجا یه ریشهی داریم در زبان هستهی شی شی ریشه نشستنم خود واجه نشستنم با پیشوند نی من یکی دوبار فکرمم پیشوند رو رو گفتم ایب نداریم برای که بعضی هستن که اینا رو نشنیدن دلی. با پیشوند نی حرکت به طرف پایین صورت میگیره بنابراین نی نشستن نی پیشوندشه یعنی در یک جا نشستن این در این زمان خواهی نخواه خانه پدید بیاد و این خانه در زبان امسترائی بوده شینگ این شینگ در زبان ارمانی الان به ساز شینگ باقی موده این خانه ساختمان در شن در گرشن به صورت شن در فارسی باقی موده و در آشیانه باقی مونده هنوز آشیانه شیانگ و وقتی که بشر میتونه که پیش بره به خونه‌های بهتر بسازه این دوران میشه دوران هوو شیانگ هوو یعنی خوب شیانگ یعنی خانه یعنی خانه خوب در اصل تنها کسی که این واژه رو بهش بررسیده یوسی آلمانی اون اشتباه کرده گفته کسی که خانه های خوب می‌سازه اما نه هوو شیانگ یعنی خانه خوب یعنی دورانی که انسان خانه ساخته و این خانه رو ما مدیون مادرانمون هستیم. برای که بی گومون فرزند خورت ساله مثلا یکی دو ماه ده روزه تبدار در آخوش این مادر بوده و چه بکنه این فرزند رو زیر تگرگ و زیر بارون و برف بنابراین یه تخته سنگ از از پیش اومده بوده این ت... فرزند زیر اون تخته سنگ میگیره اما او تنها این فرزند رو نداشت نفردندان دیگر هم بودن اونها هم میگریستند اونها هم جا می‌خواستن ولی این بنیاد مادر فکر میکنه که زیر سنگ بزرگتری بالاخره من اینا رو به صورت میگم ولی شاید اینا در حدود 10000 سال 5000 سال طول داشته تو رنجریسته بله کم کم مادر با ناخن با انگشتان خودش زیر اون سنگ رو می‌تراشه تا یه دیگر هم اونجا بتونه پناه بده و همینطور کم کم سنگ به دستش میاد و ابزار سنگی و این آغاز میشه دوران برخورداری از ابزار در جامعه بشری و تا این که بالاخره یه قار درست بگنه و میتونه خودش فرزندانش دیگر فرزندان رو همه رو اونجا جا بده این میشه دوران حوشینگه یعنی خانه خوب موضوعی که در اینجا مهم هست اینی که خب این خانه رو در کوه تونسته یعنی قار رو در کوه تونسته فرهم بیاره و شاید از جوی بار و از آب دور بوده به این ترتیب می که برای خوردن آب مقدار زیادی راه برن حتی چند کیلومتر برن آب بخورن تا بعد باز برگردن به این خانه این رفت و برگشت ها مادر رو ما با پایگاه مادر رو بالاتر بشناسیم چون همه این کار دنن روبار مادر رو به این ما اندیشه میه که یه کاری بکنیم که این آب رو در دسترس داشته باشیم آره این ولی ما صفاتون نریم بیایم. نریم بیایم. کم کم با همون ابزار سنگی فکری حسید به اینکه ممکن است که جوی بکشن. جوی ها که شدن به طرف زیستگاه ها دیگه اینها لازم نبود که حرکت بکنن بیان برگردن به سرچشم آب آب بخورن باز مرتفع از حرکت. آب به آب که خودش این بود این در شانمون موند که چه براورد و چون این چو کرده شد یعنی خانه ساخته شد. چاره آب ساخت دریا براورد و حامون نباخت این دریا باید بدونیم که مقصود دریایی که امروز ما میشنسیم نیست دریا و روده امروز هم هنوز در تاجیکستان گرامی و افغانستان به مثلا همین رود پنشیر رو که در اونجا میدینید که براداران رو خیلی مبارزه کردن میگن خودشون دریای پنشیر و سی, سی هون و اون رو میگن سیر دریا آمو دریا دریا به معنی رود بوده بله. برای که از دریای به معنی امروزی ما نتونیم آب بیاریم بالا چون دریا در سطح پایین‌تره و ما نمی‌تونیم آب رو بالا تحریدت کنیم اما از رود میشه این کار کرد بالاخره این کشیدن جوی از رود به طرف زیستگاه یکی از برترین پیامت های زندگی خانه یک جانشینی و خانه دوران خانه است که اون رو مادران مهدیه کردن خب حالا در خانه زندگی میکنه و این بچه ها خوراک میخوان و کشاورزی هم هنوز نیست اما مادر با رفتن به جنگل ها اینا مقدار دانه ها و اون ها رو فراهم میکنه و میاره مونتاه مادر میوایستی که دقت کنه صرفه باشه برای آینده هرچی که آورده به همین امروز بچه ها بخورن کم کم مادر به اینجا میرسه میرسه که باید سروجه کنه خب اگه سروجه کنه کنه باید سروجه کنه اون زمان نه کمود بود و نه صندوق بود نه چیزی نه بوده که همه دشت بود هم مادر به این انشان بیاخته که میتوان این رو زیر خاک پنان کرد تنها جایی که میشد و خب از اونجایی که انسان فراموش کار هست و تعداد فرزندان هم زیادن بعضی از این جاها رو مادر فراموش کنه و باور میشه، باورت میاد میبینه که از اونجاها یه چیز سبز شد، مانند همون سبزی که اون تو ها داشت، و بعد اینو بزرگ میشه و شکل همون دانه هم میگیره. اما چون که آبیاری نمیشه، اون دانه خوش میشه و سمر نمیده یعنی اینکه بتونیم به فرزند بده بدم با وانو خوراک که بخورن. شاید از هم خوشگاه هم میداده که بخورن، اما خب به اون خوبی و اون زیبایی نبوده. کم, کم مادر متوجه به این میشه که از اون جایی که چیزهایی که پنهان کرده اونهایی که کنار جوی هستن اونها دانشون میرسه و اون متوجه میشه مادر که باید این گیهان رو آبیاری کرد یعنی دهش پسین مادران بعد از ساختن جوی کشاورزی است و کشاورزی هم از مادران داریم ما درود به مادران شما سنوانده یه برنامه پنجره های روی محتاب هستید آقای دکتر فرید و نجانیدی در باری شانه نامی فرگوسی صحبت میکنند تلفون های برنامه 220-400-85 220-400-85 220-58-800 220-58-800 و شماله پیامک ما 3558 هست 3558 دوستو. این چیزی که فرمودید رسیدن به اینجا در طول ها اتفاق افتاده دیگه بله، یعنی شاید هزاره هزاره ها بله هزاره بله اینجا گفتار شانمه شایسته نگرش هست که چه آگاه و مردم بران برفوزود یعنی بر این آب جوی آبی کنمد بران برفوزود پراو کندن و کشت و و کشت و درود یعنی توخون رو پراکندند و کاشتند، آب دادند و بعد به فصل خودش این رو درو کردند. پسی جید پس هر کسی خانخی، پسی جید پس هر کسی نانخیش ببردید و بشناخت سامانخیش. همه معلوم شد که جایگاه زمین ها مالکی است و در اونجا کاشتند و درو کردند. و دیگه مالکیت پیدا شد هر کسی خانه خود شناخت. دیگه ناچار بود نبود که پراکنده بشن برای پیدا کردن دانه کشاورزی در نامه دیگه اومده که برادر حوشنگ دهقنه بود یعنی دهقان. یعنی اما خود در شانومه خیلی روشن اومده که به دنبال آب پیدا کردن آب و در حقیق و آب در زیشگاه ها کم کم کشاورزی هم پیدا شد چون کشاورزی پیدا شد جاگاخ پیدا شد هوشینگ معنی گرفت یعنی خانه خوب یعنی جایی که بشر در اونجا دل میبنده و به اونجا عشق میبرزه و در اونجا زندگی میکنه و دیگه لازم نیست از اونجا حرکت کنه به جای دیگه این مفهوم هوشینگ که همطور که عرض کردم نمونه درستش هنوز در آشیانه فارسی باقی مونده. کسانی که آشیانه دارن دل میبندن به اون میهن خودشون به اون خاصگاه خودشون به اون کشزار خودشون و روز به روز کوشش میکنن و جهان پیرامون خودشون رو آبادان میکنن هر کس که جهان پیرامون خود رو آادان کنه به آبادانی جهان سر کمک کمکته و به شادمانی جان جهان که همه عاعزارهای جهان از جانو برگرفته شدن اینجا دیگه کم کم ما میتونیم که بحث هوشنگ رو قا یافته تلقی کنیم تا بعدن به بحث‌های دیگه بپرداز. من یه اشتباهی کردم اول صحبتون همینجا تصحیح کنم. مجتم. هنوز شهرها ساخته نشده. مدنیات شهری هنوز, هنوز. هنوز دوران خانه. دهقان، هنوز دوران دهقانی هست بله. که کشاورزی هست. بله خانه ساخته شده. حالا شما داخت. مدن که میگید آغازش یعنی گوم نخسین شد خانواده با خانواده 50 نفر خانواده یک جور شدن این آغاز کار یک جانشینی همون چیزی که در شهر هست منتها در شهر گوسفندفره در کم کم ادامه پیدا میکنون تا گوسفند گام نخست همون یک جانشینی و شهرنشینیه همون که مالکیت به هم به وجود میاد شما چه نمایندی بر روی پنجره های هستید تلفن های شما آماده هستش ما میشنویم وقای دکتر جونیدی پاسخ شما را خواهد داد یه سوال داشتم از کارشناس محترمه برنامه جناب دکتر جنیدی در مورد آرش کمانگیر بود شخصیت آرش کمانگیر کی بوده یه مختصر توضیح اگه بدن ممنون میشم دهقان هستم از سپاهان درود به سپاهان و اون امواج زیبای زنده رود آرش در زبان عوستایی بکنه ایرخش اومده ایرخش یعنی ایرانی و این میبینید که بر فراز کوه دماوند بر اساس این ای که در شاهنامه نایمه ده بر فراز کوه دماوند تیر اندازه میکنه و وایو یعنی ایزد باد یعنی باد ستاری شده تیر او رو هدایت میکنه و میبره تا اینکه مرز ایران و توران در کنار آمودریا روشن بشه و میبینیم که آرش یعنی ایرخش جان خودشو بر سر این کار مینهد اما در داستان در شاهنامه این کار بر عهده منوچهر هست و منوچهر یعنی منوش چیستره در عویستا یعنی نجاد منوش اینا کسانی بودن که باشندگان کوه منوشان یا منوش بودن کوه منوش همینی که البورز میانین امروز و میان اون هم دماوند قرار گرفته و بعدها میبینیم که پایتخت منوچر شهر آموله بنابراین در داستان شاهنامه منوچهر و مانوشیان آغاز میکنن به بیرون کردن تورانیان از مرزها و اصلحه برتر اونها کمان بوده اما همین که تونستن که و از فراز و کوها این کار رو میکردن اونا رو میراندن در دستا به طرف توران اما همین که تورانیان هم از آمودریا حرکت کردن رفتن اونجا دیگه نیروی ایرانیان به پایان رسیده بود اما این کار رو کرده بودن یعنی تورانیان رو بیرون رانده بودن و مرز ایران و توران در آمودریا یعنی اون مسیری از آمودریا که از چارجو به طرف دریای مازندران یا هیرکانی یا یا گیلان می اومد در اونجا شناخته شد برای تاریخ پس از اون جنگ ها به مجریه خوب سپاسگزارم از شما و آقای دکتر جونیدی فرزند فرخیخته ایران آیا گفته هرودوت درسته است که بعد از طوفان مو اولین آثار حیات بشر در شهر دسفول آوان قدیم میدونم، آوان قدیم, عوان قدیم. اسمش اسمشون فرده مشاهده شده و در باره گویش دسفولی چه اطلاعاتی دارید با تشکر فرحمند از خوزستان شاد باشید درود انواج درودبون اون خانی کس که از دس فول میکرده با این نام باستانی من با دسفول فول آشناسنم، اتفاقا این هفته آزم دسفول فول هستم برای شانم. من فراموش کردم به شما بگم که دیروز شهر کرد. من میدونم دست دس فول شهر باستانیه، من هرودوت آگاهی کامل نداره برای که پس از تو فنونو که ما در شانم به صورت دیگه به نام دیگه اونو داریم که دربارهش تو خواهیم کرد. چهنشینی آغاز نشود چهنش خیلی فاصلش اش کمتره اروپاییان چون پیشینی زیادی ندارن پیشینی دانشی ندارن و اکثر پیشینی ایشون 2800 ساله به همین افسانه ها دل دارن نه پیشتر از نوح در ایران بوده البته در همه جای ایران و دسکول هم یکی از اونا ما شاد باشیم طرف باشیم که همهی کشور ما این برکت چهنشینی و جانشینی و کشاورزی رو به جهان هدیه کرده کنید که توضیحاتی رو که درباره همساای شاهنامه میفرمایند در کدوم کتاب ایشون میشه مطالعه کرد حیداری هستم از میان سپاس کگذاریم در روز بر شما من اینا رو در کتاب زندگی با مجرت آریویانشی گفتم سی سال پیش و در این سی سال ضمن، ویدرشون هم مشغول گستردن این کتابم بودم که به نام داستان ایران در آینده نزدیک به دست ایرانیان میرسه ولی شما فعلا میتونی کتاب زندگی و مهاجرت آریایان رو بخونید بله پیامک دیدی رو من خدمتون می‌خونم با سلام باسمی هستم از ملایر ما زبان فارسی، فرهنگ و تمدن خود را مدیون فردوسی هستیم چرا روز شعر و ادب پارسی روز تولد شهریار هست نه فیلدوسی من نمیتونم به این پاسیم <تصال> <تصال> همواره با جان و روان ایرانیان است. روز ویژنه میخواد خب. همواره یاد بیاریم که پدر وزرگاه ما پای پله کورسی شبایز همواره و هر شب رو میخواد می هر, هر دم و هر بازدن ما با یاد نیاخان و فیلدوسی باشه دل. شهریان هم شاهر, شاهر بودوگی ما شاهر زمان ما بود تلفون اگه آماده ه میم از برنامهمون بسیار بسیار راهکشه و آموزند است من سالال داشته من که موبد بخواین از زیای دوستو بپرسین های تفگیریر شنامه در بازار موجود هسته و به چ اونکن شاید نیدان هست از تهران بسیار بسیار از بناتون تشکر می‌کنم وقتی خوب هم داشته باشید شاهنامه تفسیر شاهنامه در کتاب زندگی ماجرات اورجویون همین اکنون عرض کردم و شما میتونید اگر در کتابفروشی رو نیست میتونید از بنیاد نیشابور بخواید اون رو برای شما میفرستن من درود میفرستم به دکتر جنیدی عزیز فضل برومند ایران و مجری محترم خواستم خواهش بکنم از دکتر که برنامه دسپول دکتر چه روزی است و در چه جایی ما میتونیم ایشون رو زیارت بکنیم بنده سنجری هستم از اهواز من گمان دارم روز بیسته هشتون باشه پایان همین هفته مطابق سالان رو نمیدونم شما از دوستان دستوریسیم بپرسید اونا حتما شما رو خواهند موسیقی میخواستم بدونم ایشون این اطلاعات شاهنامه بالایی دارند یه فرهنگی رو برای شناسوندن به جوونا دارن دارن که از جوونای قربی از فرهنگ دیگه الگو نگیریم بتونیم یه فرهنگ داخل ایران برش بدیم و مقابله کنیم با فرهنگ قرب من پوری قسمی هستم نوز سال هستی من سی یک ساله که بنیاد نجابو رو تشکیل دادم و در این سی یک سال خودم سی دفتر کتاب در زمینه, زمینه های مختلف فرهنگ ایران نوشتم این افتخار رو داشتم و حدود هفتاد که دفتر دیگه در زمینه های مختلف دانش و فرهنگ و زبان‌های ایرانی همه رو خودم بیرایش کردم و بر همه اونها خودم پیشکفتار نوشتم اگر بازار کتاب نمی‌گذاره که این کتاب‌ها به دست جوانان ایرانی در همه جا برسد، دیگه اون گناه من نیست. شما یه خورده جوینده باشید. سلام از جهرم پیامک می‌فرستم. درباره شاهنامه پرسه دارم چرا شاهنامه 200 سال به باد فراموشی سپرده شد و در قنشه شومچاق شد؟ آقای آهی از جهرم در قرن چاپ نشد در بر مو کهن‌ترین موجود رو در قرن به نوشته است. یعنی بده در دست داریم هم تو تا قرن هشتون به بعد بعضی شانومه هست علت اومدش این که دستگاه محمودیان یعنی دستگاه خزنویان شانومه ها رو در زمان و مدود از بین بردن و افسوده ها به اونا افسودن تا اینکه نشون بدن که محمود خواسته فردوسی خواسته محمود رو ستایش بکنه من در گفتارهای فراوان این رد کردم و در پیشگفتار ش... بخصوص در پیش این موضوع کاملاً چی گفتن و من اشاره می‌کنم که ایشون اون پیشگفتهار برویر شونه یعنی شاهنامه رو بخونن که اون پیشگفتهارش اینا همه در اونجا روشن شده یه مطلبی هم متوجه به سوال قبل که شده بود من عرض می‌کنم حالا پیشنهاد خوبی است سلام استاد یه پیامک هست سلام استاد نمیشه داخل مدرسه یه ساعتی رو به شاهنامه خانم اختصاص داد فکر خوبیه به نظر من حالا که بله. بله. در آموزش پرورش هم کار می‌کنن اینو خیلی خوبیه اصلا من فکر کنم خیلی خوب میشه کار کردن مدارس بر روی شاهنامه و یاد آ... آ... آ... دادن اون به بچه ها نگاه اون آموزش اونها بله. درگیر شدن با شاهنامه زندگی با شاهنامه فردوسی بله این طوره بود وقتی که انقلاب شد یه بالاخره اندیشه‌های توند بود و اون آغاز شنامه رو برمیاشتشتن از کتاب کم کم متوجه شدن که نه ما میتونیم با شنامه زندگی خوبی هم داشته باشیم الان درس میدن در لویون حال لبی رو در دانشگاه ها در شنام دست اما خب این پیشنهاد این هم میهنه گرامی شرسه توجه که اگر بیشتر از این بشه کم کم ما میتونیم که لحظات خوبی با زندگی نیاکان خودم داشته باشید انشاءالله شما شنوندهی برنامه پنجره های رو به مختب هستید شما تلفن های ما 220-485 220-485 220-58-800 220-58-800 و شماره پیامت ما 3558 و و هست ما در این برنامه با شما تجربه می کنیم خوب شنیدن و درست پرسیدن رو ما در بخش بعدی یه مختصری درباره باره سفر آیدو جونهیدی به شهر کورد صحبت میکنیم بعد میفردازیم به تحمول است درست از میکنیم در آن بفهمید. یک شهر زیبا یک که با طبیعت همان قشه هوای خیلی پاکی داره و انسان رو سگوان ندا میده که بیدار زیب های های جهان رو ببین آفرید های خداوند رو ببین پرندگان زیبایی که نقل سر میکنن و با سفیددن بیدار میشند و به انسان خفت پای میزنن که بیدار شو ده. و مردمش به خصوص مردم شهرکور چهار و بختیاری خیلی خیلی علاقه به ایران دارن بختیاری ها که بشهورند دیگه میدونید که تنها یکی که شانمخانی رو هنوز به آین داره یعنی در خیلی جه ها شانمخانی بود که تراموش شد ولی بختیاری ها نه واقعا با یک شوق و علاقه زیاد می میخونند و در صورت برای من خیلی خود بود شرکت در این مراسم بامداد در یک جلسه شرکت کردیم که در سینمای بزرگترین سینما شهر بود و از طرف فرمانداری و اداره ارشاد و حوزه هنری و ادارات دولتی خصوصا این برنامه برگزار شده بود و اون چیزی که من در این جلسه دیدم این است که شماره دختران و بانوان شرکت کننده در این جلسه پنج برابر آقایم بود و این چیزیست که همونجا عرض کردم که هنگامی که مادران بخیزند ما میتونیم به آینده یک کشور خوشبین باشیم برای آبادانی برای خاختن مادر احمیدن. بخواد تصمیم بگیره فرزند خودش رو خوب حدایت بکنه خوب فریخته بکنه برد. و اگر مادران بخوان که ام بشناسند، به شوانور فرزندون به شاسونن بنابراین ما باید در انتظار یک تلیعه سپیده دمه خیلی زیبا در کشور باشیم که من اون رو در شهر کرد دیدم البته برنامه‌های دیگه هم که بود گفتو خوب من هم در حدود یک راتونی موجا درباره شوانور سخنرانی کردم امید مقاله گفتم تا کنون در گفتورهای همین رو به محتب تقریبا مطرح شده دیگه نه. لازم نیست که بعد از این بگم منطقا موزه مهم اینی که از طرف دانشجویان دانشگاه دولتی شهر کرد هم یک دعوتی شده بود که شبه هنگام بود و از ساعت هشتونیم آغاز شد تا ساعت یازده که سخنانی من و این دانشجو نمیخواستن که جلسه تمام بشه یعنی انقدر از خودشون شور و حیجان نشون میدادن، انقدر از خودشون مهر نشون میدادن که جلسه نمیخواست به پایان برسه. این دومین جلسه من 15 روز پیش به دعوت دانشگاه و پیام نور یک جلسه دیگه در شرکورد داشتن و نشون میده که این شر داره خودشون می شناسه یعنی در عرض 15 روز سه بار سه جلسه دربار شوانامه به خاطر دارم که سالهای پیش که من به اسفحان می رفتم تردید نیست که سپحان یک پایتخت فرنگی ایرانی هست یعنی یکی از اون شهرهایی که هنوز ویژگی پایتختی فرنگی خودشو حفظ کرده اون سالهای پیش که من برای شانود سپحان می رفتم در یک از این سالها بیاد دارم که 17 جلسه برای بزرگداش شانومه برگزار شد در امسال سکوت، سکوت خاموشی درباره چهار چرمهال بختیاری و شهر کرد از خودش درخشش نشون داد من فکر می کنم که این سکوت ها و این خاموشی در برابر داده های فرهنگ درخشان ایران و باستان شاهشه نیست امیدوارم که به زودی شاهد باشیم که در سپاهان هم چنین جلساتی برگزار بشه یه پیامک هستش می خونم خواهشمندم وقت برنامه رو افزایش دهید این ده. انشالله شاءالله الان فهم نیست از استاد بپرسید کی به سخن می آیند؟ به سخن می آیند. من که همین وقتی گفتم آرزو دارم. نهله. من باید جلسه تشکیل بشه نشدم سوال اصلا مخالفت کردن. به هیچ وجه به هیچ گروهی اجازه ندادم من نمی دونم چرا. حالا انشالله این شماره پیامکی هم که اومده من سعی می کنم شما رو بخونم هر آن به تا این تصویر رو باید می کنیم پایامه شما رو باز می روی تلفن های شما قرار می گیره سی و شش. چهل بیست و یک این شماره پیامک بود خب آی دکتر بپردازیم بشن. یک نکته در باره حوشنک هنوز باقی موده بله بله خب وقتی که ببرزید و بشناخت سامان خیش یعنی کس سامان خودشو شناخت مالکیت پیش میاد و این مالکیت با کشیدن یه مرز بین این زمین و اون زمین همسایه آغاز شد این مرز بود دات دات, دات. که این دات با تغییر خودش در زبان فارسی تبدیل شد به داد یعنی قانون و از اون سوی در زبان ککویله و برحمت و در زبان نشابور تبدیل شد به دای و دای یعنی دیوار یعنی نخستین قانون ها با مالکیت به وسیله دیوارهای شناخته شد که بین دو سامان و دو مرز قرار می گرفت. یه بار دیگه میشه بفهمیم یعنی وقتی که دیوار قرار گرفت بین دو سامان یعنی شد داد این همین دیوار شد قانون و بر حقیقت این دیوار بر بنیاد مالکیت بنیاد نهاده شد. دات یعنی قانون؟, دات یعنی قانون. و شما ببینید که هنوز هم بزرگترین در حقیقت تکیه همه قوانین همه کشورها جهان بر روی مالکیت یعنی این از دوران هوشنگ پیدا شد قوانین امروز ما همه بر بنیاد مالکیت یعنی کسی سند ملکی داشت با, با اون سندش میتونه پیروز بشه همه جا ولی کسی با گفتار امروز نمیتونه در ماورکه ما پیروز بشه این پایش از اونجا گزشی شد داد یعنی دیوار یعنی قانون. حالا ما پیشفند هایی داریم که درباره اون پیشفند مثلا نی الان در نشستن صحبت کردیم یه پیشفند دیگه داریم در گفتار به نام فر. که در باجه فره با خود یعنی به سوی پیش رفتن این نخستین من فکر کنم که نخستین واجهی که با پیشفند فر پدیدار شد همون فرادات بوده غیر از فرما کلبت یعنی پیش به سوی دیوار یا پیش به سوی قانون این فردات در تغییر خودش در دگرگونه خودش تبدیل شد به فریاد و در فارسی تبدیل شد به فریاد که حالا ما میگیم فریاد معنی این فریاد اینجا گفته میشه پیشتر از این اینکه من اینجا رو معنی رو بهش گفتم یه مثال از داستان بیژن و منیژه میارم که اونجا که منیژه گریان میره پیش رستم و قبلا در این بالو صحبت کردیم و مرغ بریان رستم بهش میده و اونجا میبره سر چاه و به بیژن میصوره بیژن میبینه که انگشتری رستم اونجا و شروع کنه به قاه خندیدن و او میگه که دیوانه شدی تو این شب رو میبینی نه روز تو این چاه در بند خنده دیگه چه جایی داره گفت که بیژن گفت که چنان دان که آن مرد گوهر فروش که آن مرغ بریان رادا توش زه بحر من آمد به توران فراز و اگر نه به گوهر نبودش نیاز اون وقت به منیجی میگه که او بگو که بگو اگر تو خداوند رخشی بگوی به علم و بتن چار جوی اگر تو خداوند رخشی بگوی یعنی تو رستم قصیب تو به من بگو من این دوان میاد نظر رستم میگه رستم میگه که بگویش که آوری خداوند رخش تو را دادی از فریاد بخش یعنی فریاد بخش خداوند کمک رسان حالا برگردیم یعنی در عدب فارسی تا زمان سعدی هم تو این فریاد رو من این کمکه یعنی که شنیدم که سالی به زندان بماند نه شکوت نه فریاد خوند فریاد خوندن یعنی کسی رو به کمک خوندن خب اما کم کم در زبان ما به معنی فریاد به معنی بانگو و غریب و قوقا در ولی خوشبختانه هنوز در زبان آمیانه ما یک اصطلاعات داریم مثلا میگه به فریادم برس به فریادم برس یعنی بیاری من بیا یعنی به کمک من بیا حالا واجه فردات اینه فرداد یعنی دیگران رو به سوی داد و د... مرز و دیوار خود خواندن یعنی از اونها یاری خواستند فریاد خواه یعنی کمک فریادبخش فریاد بخش یعنی کسی کمک می‌سونه. فریاد رس که نام خداوند هست یعنی کسی که به... به کمک و یاری همه جهانیان و همه زرات وجود از آمید گرفته تا کششانها میرسه. فریاد یعنی فریاد فرات یعنی کمک یاری خواستن کسان رو به سوی داد و دیوار خود فراخوااندن خب تموم شد دیگه در دیگه تموم. تموم شد دل. شما ش بندی برنامه پنجره های روی مطوب هستی آقای دکتر فریدون جنیدی در درباره شاهنامه فردوسی صبت فکر پای اینجا دیگه بپردازیم به تم رسله بهشی ن سوالات در این زمین هست اما مط تقسیم بندی زمانی کردیم که بخشی صحبت بفرمایید و آقای دکتر جاندی اشاره میکنند که استراحتی هم بکنند بله من فقط از میکنم خدمت شما تلفن های برنامه ایم. ما 222-485 222-485 222-58-800 222-58-800 و, و, و, و, و, و, و, و, و شماره پریامه که ما 3558 هست 3558 ساعت 22 و 20 است آب میکنید آی دکتر راحت باشید ممکنه کتابی کوتاهی نمید در هستی این در زندگی نیاکان ما با نام تحمورس آغاز میشه تحمورس در زبان پهلوان تخموریت که زیاد معنی شکافته نمیشه اما در زبان عوستوی هست تخم اروپا یا تخمو اروپا تخم یعنی پهلوان که در واجه تهم هنوز ما داریم مثلا رستم رستم بوده تن تن یعنی کسی که تن نیرومندی داره اون از ریشه روپ یعنی روبودن گرفته شده یعنی تن تنی که می باید این چه وقتی رو بیان میکنه گرفتن جانوران چون وقتی که سامون شناخته شده کشاورزی هست خوراک فراهم میشه اما این خوراک همواره نیست زمستون میاد بهار میاد اوایل بهار خوراک نیست بشکل کم, کم به این انشیم میفته که برای خوردن چه باید بکنه اون کاری رو که با با روبودن جانوران یعنی گرفتن جانوران امکان پذیر و وقتی که جانوران رو بگیرن اون وقت میتونه که از شیر اون جانوران بشر هم بخورن. جانوران نخستین که به دست بشر افتادن مثل مثلا بز و گوسفند اینا زیاد شیر ندارن. پس باید تعداد زیادی از این جانوران گرفته بشه و کم کم بشر میفته به گرفتن به آغاز میکنه به گرفتن جانوران، به ویژه جانوران و ماده. پیداست که وقتی که جانوران ماده گرفتن اون وقت مثلا اگر نگذارم که فرزند او شیر بخوره، شیر اینا از میان میره. اینا میفهمن که باید با فرزند باشه. بخشی از اون رو باید فرزند این جانور ماده بخوره. بخشی از اون رو باید انسان بخوره. پس از مدت زمان گذشت متعاجی میشن که اگر نرها با مدعا همراه نباشن اینا داره فرزند نمیشن. بنابراین نرها رو هم میگیرن. و همراه مدعا نگه میدارن. گله پروری و گله داری آغاز میشه در جامعه بشری این از همونجا دامپزرای جو نه مون تو این گرفتن جانوران به همین سادگی نبوده برای که خب اینا میگرفتن نه بودن که همراه بشن و بشر اینجا از بعضی از ابزارها هم استفاده میکنه ابزارها چوبین یکی م... که در سنگ های ایران فرهنگی از قضاقستان گرسد از تا کوردستان غربی و اربیل لینا دیدم در همین جا هست یک نیزه چوبینه که در دستش هست و با, با این نیزه میتونه که شکار رو مثلا ضربه بزنه یا بگیره بردرده یک ابزاری هست که در شانامه یک بار از اون نام برده شده که به چنگ درازش به زیر آوریم یعنی چنگ چنگ در جنگ های اخیر شناخته شده است به طور که یک میله فلزی رو اگر خم بکنن و سر اون جایی که خم شده سر نیزه بذارن این خودش میتونه که بندازم به گردن دشمن و به کشن جلو این چنگه که همطور که از کردن در شانوان فقط یک بار نام برده شده ولی خوب درست از خود سخن شانوان و فردوستیه به چنگ در آغازش به زیر آوریم اما در سنگنگاره های زمان تهمورز که بشر اونجا برهنه دیده میشه و در این زمینه دو کتاب خوب اول آغاز پژوهش بسیار بزرگ این جریان به وسیله دکتر مرتضا فرهادی بود که در کتاب موزه های درباد ما نبینیم که یک کوشش خیلی عظیم و دامنهدار کرده برای این سنگنگاره هایی که از چند هزار سال چه هزار سال پیش بر تخت سنگهای کوهستان ها بوده و اینها بشر در حقیقت گرفتن شکار و ش... یعنی به خدمت گرفتن جانوران رو اینطوری نقش بسته در سنگ های ها تا جایی که بشر به رحن همه متعلق به دوران تحمول حدود سی سال پیش سی سال بیس سال پیش اینها ها متعلق به دوران تحمول خوب خب این چنگی که در اون زمان بشر به کارم برد اونم باید از چوب باشه یعنی یه چوب دو شاخه رو اگر یک شاخه کوتاه کوتاخ ببرن و یک شاخه شو بلند این تشکیل نخستین چنگ چوبی رو میده به این ترتیب دنبال جانوران رو و این چنگ رو به گردن اینا می و می گرفتن. خب اینا دویدن با جانوران در کوه و دشت و خب مسترزمه اینه که انسان نیروش زیاد بشه این واجه تهم و تهم باید برگرفتن مثلا از اینجا پیدا میشه تهمورس در زبان فارسی به نام زیناوند هم شناخته شده تحمورست زیناوند این واژه زین در زبان پرده بوده زین در زبان عوستایی بوده زعیننگ زئنگ یعنی جنگ افزار میبینید همون چنگ و همون هم جنگ افزاره یعنی همراه با تن... تنی که برای دویدن به دنبال شکارها در کوه و دشت انجام می‌گرفته که تن می شده زمنن زن یعنی جنگافزار هم با داشته باشه این زن در زبان فارسی متاسفانه به صورت زین تلفظ میشه و به معنی اون چیزی که روی پوست اسب می‌ذارن در اومده اما خوشبختانه هنوز در زبان ارمنی که یکی از زبان‌های پیوسته آریایی به زبان ایرانی است در جو زن به معنی جنگافزار هست زمین ما واضح زن رو در دو واژه آمیخته دیگه داریم که بهش توجه نشده یکی زندانه یعنی جایی که با جنگ افزار ازش نگهبانی میشه یکی واضحه یکی همه جایی یعنی لاغل در تهران زنجیر گفته میشه که اشتباس زنجیره زنجیر یعنی اصلهی که به صورت ریز ریزه به همدیگه پیوسته شده باشه خب بشر به دنبال تهمتنی به صلاح هم دست پیدا کرد نخوسین صلاح ها تو کار کردم نیزی چوبین و چنگ چوبینه و با اینها میتونه میتونست که جانوران رو بگیره بعدا خوب جانوران بزرگتر رو هم به دست آورد و این دوره همراه شد با دوره زندگی بشر با جانوران برای خوردن شیر اونها که البته بعدن پیوماتور دیگه هم پیدا میکرد که ما اون رو اونها رو هم دنبال خواهیم کرد سپاس گذارم از شما آی دکتر جانیدی برای شما هست کنم شنوندگان عزیز آی دکتر جانیدی امروز بعد از زخش رسیدن تهران و درست از دیگه ساعت می و خسته هستن اما آمدن منده یه منده نباشی و اومدن در برنامه شرکت کردن به خاطر علاقهی که به شما شنوندگان عزیز دارن و ما این بخش رو تا همین جا با اجازه شما شنوندگان عزیز همطور باید از آقای دکتر نگه میداریم در هفته وینده ادامه خواهیم داد این بخش رو ما الان تلفن های شما رو میشتمیم و پرامک های شما سوالات زیاد شما و تلفن های زیاد شما رو پرخش میکنیم فقط خواهشی از شما دارم لطف دارید بر ما در پرامک هاتون در تلفن هاتون تشکر میکنید از برنامه به ما محبت میکنید اما سوال بفرمایید ما ما این رو من تکرار میکنه ما در این برنامه با شما تجربه میکنیم خوب شنیدن و درست رسیدن رو منتظر تماس ها و سوال های خوب شما هم هستیم و همینطور پیامک های شما یعنی اینطوریه که با سپاس از شما شما سپاسگزاری نکنید فقط برای فرصتتون پس من لطف دارم واقعا همه این پیامک ها مثلا پیامک اومده بود خیلی جالبه ده من اینو براتون بخونم آی دکتر جنوی ام... تشبیه قشنگ کرده بود حالا اینو پیدا میکنم برای شما در بخش آغاز بخش بعدی براتون میخونم ما تلفونهای شما رو میشنیم تلفونهای ما 222-4825 222-4825 222-58-800 222-58-800 و, و, و, و, و شماره پیامک ما 3558 3525 谈究无还是谈 تو عزیز سلام عرض می کنم و ابتخار می کنم از دور دستشونه می بزن من یه شانامه ای دارم که سردار اعظم اینه تهیه کرده که به محمد علی هدیه بکنه میخواستم ارزش معنوی این را به من بفرمایند که اینه نگهداری بکنم ممنونم همطور که فرمودید این شانهما ارزش معنوی داره بیشتر از اون چیزی که از دیدگاه مادی بخوایم من یک بار در این برنامه عرض کردم که از طرف خانهای قشقایی دستور تهیه شانهما یعنی سفارش تهیه شانهما داده شد به تهران به این شانهما وقتی که فراهم شد و از طرف ایل قشقایی یک گروه زیادی سوار و و و شیپور و نقاره فرستن به تیران و این یک شانومه رو این طوری با شکوه و عظمت از تیران تا ایل قشقایی رسوندن یعنی در بین راه در تمام شهرها در تمام روستاها با شیپور با نوای خوش با شادی شادمانی شاهنامه رو سر دست می گرفتن تا آوردن به ایل قشقایی رسوندن این شانومه شما هم همطوره ازش معنوی امیدوارم که طوری باشه که به دست ما دیگرهایان نرسه و نه رو بفروشن. به نظر من شما اگر از گنجینه خانوادگی دارین در اون رو بگذارید و وقتش بکنید اگر نه اون رو به کتابخانه همگانی از سوی خودتون بدید که بمونه برای یا موزه ها موزا و موزا هم خیلی میتونن براید. خوب نگهدارن و حالا اگرم نمیدونم خبر داریم روز پنجشنبه شب برنامه شاهنامه خوانی بود برنامه بزرگداشتی از شاهنامه بود که مرهم بودم در موزه ملی ایران و حالا اینجا شاید جای این باشه که خدمتون ارز کنم با حضور آی احمدی نژاد رئیس جمهور و اساسی دیگه و تجلیل شد از مقام شامخ فردوسی و از شاهنامه بای هم پرده برداری شد در این مراسم اون چیزی که من میخواستم خدمتون ارز کنم این بود که خیلی جالب بود این تشریعی که کردن با سپاس برنامه استثنایی شما به راستی کاوه فرهنگی برنامه ها می میباشد درود بر شما و فریدون برنامه‌ریتان میم حیدری کارشناس فرهنگی دانشگاه تشکر بکنم از بحث های جنیدی و در واقع نیمان هرجومتی برنامه ای رو به مخدا اگر با بانن کنم برای من که مالای جوان سیومنگ بلا اصلا فیلی جالبی که را شاهنامه میشنم به این شکل و به این درمان بگونه که داره گفته میشه با این زبان سلیس فارسی که شاید دوشوار باشد من را جب این صحبت گردن اصلا بگون کون صحبت گردم اصلا تشک و پیامکی رو میخوام این پاسخی فکر نکنم درسته پاس گذاریم ازشون لطف گردند هم گفتم تشکر هست سوال بفرمایید خواهی دکتر منتظرن که سوالات شما رو بشنمند من اینجا پیامک هایی دارم اگر میشه موسیقی رو بشنویم اگر تلفونی هست که من پیامک ها رو نگاه کنم چون ببخشید یه دوستی پیامک زده بود برای ما نوشته بود اینقدر صدای نفسات میاد مواظب باش نزدیک نشو این میکروفون من و این مانیتور این تصویر این تلویزیونی که جلوی هست مانیتوری که هستش خیلی نزدیک به هم هستش آی دکتر شما قشنگ می‌بینید و گواهی می‌رید من هی ناچرم چشمم هم نمی‌بینه ببخشید چه نندگان عزیز پیر هستم عینک می‌زنم سنی ازم گذشته و این نزدیک می‌شم من پیاما که پیاما رو بخونم صدای نفس‌های من میاد اجازه بدید پیام رو بخونم و اون سوالاتی رو که با توجه به موضوع امروز هستش پیدا کنم اگر نه به صورت سوالات پراکنده که شما فرمودید از آقای دکتر جونیتی خواهم پرسید کتاب داستان ایران که اشون نوشتن آیا قومهای پیش از تاریخ مثل میتانیان یا غمبای دیگه که تو توشانامه نیومده معادلشون آوردن این اصلا میده یا نه مثل مثلا پیش دادن که میگن معادل میتانیان هستن مرسی خیلی ممنون سنایه هستم از تهران بر شما به زودی داستان ایران به دستتون خواهد رسید و شگفتی کار نیاکان رو در اونجا بینید که با چه اشارات دلپذیر و زیبا شهر دادن کارها رو البته مثلا هیتیز ها حتی در این نامه ها اومدن و من سی و اندی سالی که مشغول این کار هستم شما یه چند ماهی یه سه ماهی دیگه تحمل رو به امید خدا به دستتون میرس هیومه چیستش؟ سلام آقای دکتر جونیدی شب بخیر و عرض تصدیت به مناسبت شهادت خانم فاطمه زهد و سلام الله علیه ها شما گفتید در از ابیات شاهنامه مثل بسی رنج بردم در این سالسی حالا ادامش به سالات نقطه گذاشتن از فردوسی نیست اما طی این چند روزی که بزرگ داشته فردوسی بزرگ بود همه محققان و اصحاتی بدون توجه دقیقا همین به اشرا تکیار میکردن به نظر شما چه راهکاری وجود دارد تا بتوانیم حقیقت شاهنامه را بفهمیم در دقیقه هم بفهمانیم که فردوسی بزرگ زحمت زیادی کشیده اما رنج نبوده با تشکر میم منظری از مشهد معدست درود بر شما ما باید کوشش را آغاز کردیم باید این کوشش ادامه بدیم تا همه بیدار بشن و اون شعر رو من گفتم که به چند دلیل از فردوسی نیست، که سال سی اصلا در زبان های آریایی نادرسته برای که در همه زبان ها آریایی اول عدد میاد بعد مدرد یعنی سی سال باید بگیم شما اگر به کودک پنج ساله بگید گرد و پنج به شما میخنده و چطور خداوند سخن میاد بگید سال سی دو اجمع به زبان عربی یعنی کودن کنگ بیخرد آیا فردوسی به ایرانیان میگه کودن گنگ بیخرد فردوسی همه جا از ایرانیان به نام آزادگان یاد کرده. این سخن از نیست به ویژه اینکه من شکافتم فردوسی دستاورد شگفت شگفتانگیز فرهنگ و زندگی نیاکان بزرگمانش خودش رو در دست داشت و اون این رو به زیباترین بالاترین خوشاواترین خوشاههنگترین با ترین زبان جهان که زبان فارسی و زبان گفتار خود فدوسی باشه برگردون چطور چه این کسی میتونه که اینجا رنج برده باشه؟ بگمان من فیضوسی در تمام مدت در پرواز بوده جان و روانش در پرواز بوده و رنج نبورده این هم از فیضوسی نیست البته فیضوسی سی کار کرده ولی این بیت از فیضوسی نیست خب حالا من گفتم دلایل من گفتم هنوز که این دلایل به گوش همگان نرسیده امیدوارم کم کم به گوش همگان برسه تا ابیات افزده در شانومه رو بشناسند پیش بود که موضوع رو مستح کردن درباره واژه شمال اون رو نسیم در واقع معرفی کردن گفتن در یک جای از ایران گفته میشه میخواستم عرض بخونم در کاشان ما هم در واقع هنوز شمال رو به معنای نسیم خنک در واقع به کار و خواستم واقعا تشکر بکنم از برنامه بسیار زیبا و خوبشون خیلی باشکرم نه این, برستان، این برستان، که پاسخی نداره و درسته من نمیدونستم که در کاشانم شمال میگن من سپاسگزارم از شما با سلام در شاهنامه اسفندیار روینتن معرفی شده از طرفی در رزم با رستم میفرمایید خمین خون به جوشن فرو ریستن این تناقض چی قابل حل است. بیاری از دان درنگ کنیم تا مفهوم روینتنی اسفندیار چی هست و تفسیر اون و گزارش اون چیه در داستان ایران جلد دوم می خواهد اومد این مطالبی بوده که منجر شده به این که ما فکر کنیم که تن اسفاندی ها رو این بوده اگر تن اسفاندی ها رو این می بود که نباید بمیره این یک مطلب خیلی خیلی مهمه که شکافته شده بیاری از در آنیده به عرض ملت بزرگ ایران خاطرس این در همون رمزگشایی هست که شما در برنامه‌های آینده انشالله به اون خواهیم رسید. البته نه من در این برنامه چون باید اون در جلد دوم باشه جلد آه. اول داستان ایران دو سه ماهی که میاد بیرون ممکنه یه مرذ از اون رو در اینجا در برنامه بگه ولی برای جلد دوم باید یک اندکی درنگ کنیم شاید من فکر کنم یک سال دیگه اون به دست برسه موضوع خیلی مهمه یک موزه تاریخی خیلی خیلی شگفت انگیز ولی این نیست که ما فکر کنیم یه تنی بوده که به جای پوست روی باشه این نیست خیلی خیلی شگفت من شما رو به درنگ فرام میخوانم بیاری از دان ندید شما ما رو تشنه میذارید بعد میگید سیراب کنید بعد طبخو نمایشه همین همتو... خوبه, همی خوبه. باعث باید نشه باید تشنه, باید. باید تشنه باشه بله بله این چشمه روشن جان نیاکان ما که شاهنامه است این بعد از اینکه خیلی تشنه شدیم اون وقت از این آب فرح بخش روح نواز اگر بنوشیم بهتر بده حمو جانم رو روانمون آب چند تشنگی آورده تا بجوشد آب از بالا و پس. تاریخ دقیق و علت مهاجرت خرد به شمال خراسان ازشون تحال کنم الان ما در خراسان خراسان شمالی بالغ بر چند ملیون خورد داریم خودتان بزنم اینا به چه دلیل اون موقع کوچ کردن اومدم دلیل شاید ما توضیح من مشتبه علیزاده هستم از بوجنات خراسان شمالی درود بر شما و درود به کرمانج عزیز که من نخوشین واژهای زیبای خوش آهنگ این زبان موسیقی کردی رو از کرمانجا از اون شیر زنان کرمانج از اون شیر مردان کرمان شنیدم و این موسیقی جان و رو روان من رو همواره در حقیقت می افروزد و من کردان خراسان رو مثل همه کردان جهان دوست می‌دارم اینا کردان شمال بودن و در انبار و در مثلا فرض کنید که اون بخش شرقی اون کشوری که امروز ترکیه نامیده می میشه اون زندگی داشتن و کردان شمال یعنی ها بیشترین جمعیت کردان جهان رو داشتند به اعتمال قوی میدونید این رو نمیشه در تاریخی نیمده به اعتمال قوی برخی از پانسی ایران برای دفاع یعنی یاری رساندن به سرزمین های خراسان اینا رو کوچوندن و اتفاقا یکی از این تیره, ها، تیره های امبارلو است که خود گرد های ما میگن امارلو با عینم میوین امارلو نیست امبارلو اینها که به احتمال قوی نزدیک های شهر انامبار در کشوری به نام عرااق امروزی بودن شمال کشور و وقتی که مهاجرت کردند به خراسان، گروه از اینها برگشتن الان در گیلان زندگی میکنن و همه ویژگاه های زبان و فرهنگ خودشون هم حفظ کردند و هر جا که کرد باشه اونجا ایرانه شما روزگارتون خوش باد در شاهنامه از کدام شهر ایران ایران زمین بیشتر یاد شده؟ در شاهنامه از توس یاد شده با نام توس شهر توسه از غزوین با نام کاسبین و برقیقت پادشاه کیانی که کوس بودی کابوس بوده بله با نام پارس و پارسوماش از شهر قیصرو که کنار دریای ارومیه بوده در ارومیه بوده و جالب اینه که در نوشته های همسایگان ما هم نخستین اقوام پارس رو پارسوماش رو در کنار دریای ارمیه معرفی کردن یعنی آذربایجان نخستین اقوام پارس بودن خب حالا دیگه به ترتیب دیگه در مجامع دیگه مطرح میشه یعنی پارسن خستین، ارمیه و اورمیه و آذربایجان بوده این پایتخت کیخسرو بوده و دیگه شهر دیگه بسیار بوده باید. سیستان بلوچستان سیستان, سیستان زابل هم اینو نام برده شده که بعض بعضی جناب به نام سردار و به نام ایل و به نام اون دودمان هست بعض جناب نه خود نام دیگه مثلا این توس واقعا شهر نام توسه که هموره توس سفحسلال هم به نام خود اون شهر می خند اون پلهوان اون می که وقتی دو ۳ سال و ۷ سال عممر کرده یعنی هموار فرماندار تو نامش توس بوده این مفهوم رو داشته. زمن شب بخیر و خسته نباشید. به موجه محترم و جناب دکتر جان میخوام میخواستم از دکتر سوال کنم که کوهندترین اثری که در رابطه با آتش میتونیم مطالعه کنیم چه کتابی رو پیشنهاد میکنن ممنون میشم مکمندی هستم از احواست درست بر شما کهنترین گفتار درباره آتش در شاهنامه است به سنگندر آتش از اون شد پدید که از اون در جهان روشنی گسترید البته در همین بخش و هوشنگ یک داستان افسوده‌ای نادرستی اضافه کردن که همه الان همون داستان رو قبول دارن که یه چیزی سیاه از کوه اومد و هوشنگ سنگ برداشت که اون چیز سیاه رو به نتونست بکوشه سنگ ور سنگ دیگه خورد و فروغ آذرنگ پدید شد و آتش پدید شد نه قربان چنین چیزی نیست زدن سنگ با آتش زدن باید اقلاً صد بار دویست بار شما بزنید تا کم کم اون پوده ها یا اون پوسته گیاهان خشک رو بتونید کم کم روشن بکنه با یک سنگ که به سر یک چیزی سیاه یعنی مار بزنن نمیتونه آتش افروخته بشه این داستان داستان افزود است البته بیشتر از اینکه من بگم اففرود خالقی کادق مطاقم در خاانش آورده که افزود منتها خب دلایل من این دلایلله ما در پناه این داستان افزود بزرگترین راه فرهنگ و خرد آکانمون رو ما پنهان کردیم اینه به سنگندر آتش از اون شد پدید که زور در جهان روشنی گسترید. این کواهنترین گفتار درباره پیدایی آتش یعنی زمان سنگ یعنی زمان است که ما در حیاط دست افزار سنگی داریم ابزار سنگی پیدا شده پس از اینکه ابزار سنگی پیدا شد از برخورد این آتش پیدا میشه و تمام جهانیان برای برخورداری از آتش وامدار نیاکان خرمند ما هستم. درود بر شما دکتر جنیدی درباره معماری و شهرسازی در شاهنامه آیا کتابی هست توضیح بفرمایید. کتابی ما تقریبا حدود 30 سال پیش چاپ کردیم از دکتر مهدی فرشاد استاد دانشگاه شیراز بود که پس از بازجستگی به سوئیس رفت این کتاب کتاب تاریخ مهندسی در ایرانه و تمام نرشته های مهندسی رو در ایران بررسی کرده و در همه جانشین داده که اینها این فنون و این علوم از ایران به جهان رفته از جمله درباره معماری و در در این کتاب سخن گذشته که من شما رو راهها کنم به خوندن اون تاریخ مهندسی در ایران دکتر مهدی فرشاد یعنی اند این کتاب رو سی سال پیش منبییرش کردم و پیشخورم براش نوشتم و اکنم در دست هست. با سلام خدمت آی دکتر جونیدی نام مادر رستم را می‌خواستم بدانم. بدانم خیلی خوبه برای که ما باید بدونیم که رستم جامعه پهلوان از روداوی مهروی از ماه کابلستان دختر سیندخت و دختر مهراب کابلی رودابه مهروی که در حقیقت مهر پیوست به زال پهلوان اون وقتی ها ستم شد و موافقت نمی با ازوازشون اما چون راست گفته در مهر خود چون به مهر ورز به راست بودن در پایان با پیروزی این ها به پایان رسید و رودابه نام مادر رستم پهلوان شما ده پیامه کهی که برای ما فرستادن این سوال رو, رو پرسیدن فرقون سد دوازده پنجا و هشتاد و دو مذاهوی دکتر گفتن من افشانه می فردوسی کتابی هست به فارسی روانم معنی کرده باشه شعر و ممدون باشه بخش های اشنامه در کتاب مصور قرر اخبار ملوك الفرس مثلا به عربی بود بعدن ترجمه شد به فارسی و بخش های دیگر اشنامه در کتاب های تاریخ از اسلام هست اما خود شانومه فیدوسی به زبان فارسی اخیران یکی دو ترجمه شده من نخوندم اون ترجمه ها رو ولی خب میدونم که ترجمه شده اما شما اگر بقاید که شانومه آنگاه بشید باید حمد کنید گفتار خود فیدوسی رو بخونید چون گفتار فیدوسی برترین گفتار یک انسان در کوری زمین هست شما چرا چنگ نندازید به زیباترین گفتارها رو به ترجمه ای از اون گفتار بیندشید سوال دیگه از فقط کوتاه پاسخ بدیم چون زمان زیادی نمونده آیدو شور چرا قبل اینقدر ایران را می در تاریخ نادیده انگارت؟ برای که غرب از ایران می ترسه. برای که همه ترسش از ایرانه غرب نه از هندوستان می ترسه نه از مصر تو کشور کوهن با چین هم که زیاد استباد نذاشتن و همین که ایران را شناختن دونستن که ترس از ایرانه استعمار انگلیس و, روس و باستان به هم تک تک هایی از ایران جدا کردن تا ایران رو ضعیف بکنن و هنوز هم که هنوز قرب از فرهنگ شخومند ایران می ترسه و از شدن ایرانیان شما باید بدونید که از بزرگترین دستگاه های علمی فرهنگی جهان رو ایرانیان دارن ایرانیانی که رفتن به اون کشورها دارن اداره می کنن. جا داره که اونا از ما بتستن اما من همین جا به شما بگم که ایران چشم است اگر کسانی از این چشم خارج شدن و رفتن به خارج هنوز چشم جوشانه و هنوز چشم در احماق زمین جای داره و ناراحت نباشید برای آینده اما ما فرهنگ مطوری نیست که واقعا دیگران رو بخوایم بترسونیم فرهنگ ما با میر هم برای بوده اما اونا چون با قهر و کین به ما نگاه میکنند این ترس از ما داره. سپاسگزارم از شما آقای دکتر فیدون جان. خسته تش... تشریف آوردید. انشالله که سلامت خوشید. میدونم مسافرت بودید، لطف کردید من که با, دا با دا گفتار خیلی شجاعانتم تمون کردم. بله. از خستگی و ماندگی خوردن شما شو سپاسگزارم از شما. بله. همکاران من در این بخش عزیزانی که کمک کردند، تهیه کننده سکرخانم اعظم مساعدت دلبری، همایگی برنامه سکرخانم رضایی، صدا برداران خانم نشیبه و آقای حسینی، ارتباطات آقایان حسینی، محمدپور و آقای محمدپور سردبی و مجری برنامه بنده حمید رضا هدایتی هستم. با سپاس از همه شما. سایه‌ام که بر دیوار حک شده است کنده می‌شم، از روز‌خایم که روی یک نقطه ثابت به آسمان قوف شدند، می‌گذرم. از شب‌خایم که به امید ستاره از آسمان فرو میریزند می‌گذرم. و, تس... و به سکوت جهان گوش می‌کنم. به صدای کهکشان گم شده در لای لایتناهی. خدا نگهدار.